روز هم هم نوا با شما در هفتمین روز از ماه خون سرود غم سر میدیم و به یاد شهید کربلا و گنچه پرپرش مویم میکنیم است تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در رادیو معرف با موج عشق موج عشقی که اشلا تا سیزده همه محرمون حرام تا دوازده همه محرمون حرام تقدیم میشه به همه شما شنبندگان گرامی و عزاداران و بخش های مختلفی رو در این برنامه تقدیم شما میکنیم که انشالله این بخش ها رو بشنوید و مورد توجه نتون قرار بگیره بخشی به خطبه منای حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام با کارشناسی اوجهترستان و مسلمین استاد داجه بردی با کاروان کربلا همراه میشیم در سخنان اوجهترستان و مستمین دکتر محمد رضا جباری و درس هایی از آشورا می‌گیریم از زبان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 خوابه، خوابه، گريونه، گريونه، گريونه، بی آبه, بی آبه،, بی آبه،, بی آبه می تو الغه یکی گریونه گریونه گریونه ماشموذگی بی آب بی آب بی آب رباب میدونه چشم تنهایی چه بده چشم صداری چه بده بدون دون امور آوا به خیمه آقاب به خیمه رباب بدونه چشم صداری چه بده چشمه صدا بدون امور آوا به خیمه با خیلی و موسیقی تسلیفی تحذیت به مناسبت سوگباری سوگواری حضرت عبادلال علیه السلام به همه شما شنبندگان گرامی خداوند رو باز هم شکر میگیم که توفیق داده تا زنده باشیم محرم دیگری رو درک کنیم و عزادار حضرت ابوالعبد الله حسین رضی سلام باشیم خب در برنامه امروز هم میزبان حضرت الرسول مستمین استاد داجه وردی هستیم و از كلامشون درباره خطبه‌ی منای حضرت ابوالعبد الله رضی سلام ان شاء بیشتر استفاده خواهیم کرد سلام می کنم وایلا جلی شما خیلی خوش آمدید. از عزاداریتون مقبول وعلیकुम السلام بسم الله الرحمن الرحیم منم به نوای خودم از سلام خدمت عزاداری و دوستان و همه‌ی شنو ادگونه برنامه خوبه شما هستم در خدمت شما هستیم بحثو و شاءالله بکنیم سلامت باشین ان دیگر همین یک چراغ مونده همین یک چراغ مانده که تا زمان باقی است حقیقت روشن بماند گرچه کوچک، اما آماده جهاد است کفنش همان گنداغه اوست همچون برادر بزرگش علی اکبر با لبهای خشکیده به میدان میرود با خون گرمی که هدیه میشود به خدا گل قنچه رگش است اما خندید گل قنچه رگش است اما خندید آیین صفت شکست اما خندید بر شانه سلطان ولایت اسقر تیرش به گلو نشست اما خندید Glory to God. صحبت کنیم درباره برای خطبه منای حضرت عبا عبدالن راسته سلام که در زمان معاویه حال حدود یک سال قبل از مرگ معاویه و اصلا قبل از باقی آشورا اماموسی ندهی سلام در سرزمین منا این خطبه ایراد کردند و طرف صحبتشون هم رقبانیون و روحبان بود خدمتون ارز کنم که از آیات قرآنی که اماموسی ندهی سلام مطرح کردند صحبت کردیم از آخرینایی که امروی معروف و نحی از منکر بود صحبت کردیم به اصابه رسیدیم گروهی که امام حسین باز اونجا به اونها خطاب میکنند و بحثی را آقای لاجوردی فرمودند به حق قهلبه که پای ما شد و حق زحفا قرار شد امروز بیشترین دوتار کازی دو بهید آقای لاجوردی بله همطوری که از تاری فرمودید آقا با عبدالله بعد از اینکه گروه عبدال رو که تأثیر گذار هستن تأثیر گذار علمی تأثیر گذار روحانی و معنوی هستن رو عنوان علماء مطرح کردن بله. و تحلیل بسیار دقیقی داشتن که جامعه ای که فاسد میشه به خاطر که شما کار خودتون رو انجام نمیدید به حساب پرداختن گفتیم حساب گروه هستن تأثیر گذار بله. که تو مردم معروفن حالا معروف به علم، به خیرا معروفه به تأثیر گذارین به خیرخواهین دارای ابوحت اجتماعی هستند به طبیل یه آقا با عبدالله دارن به صورتی که وقتی مردم مشکلی پیدا میکنن از اینا توقع دارن که مشکلشون رو حل کنن واسطه بشن برن حق مردم رو حق توده های مردم رو که ببینید توده های مردم همیشه احتیاج به حامی دارن خوشبانه دارن بلا یا معیوس میشن یا در کارایی میکنن که زاییات برای جامعه داره همیشه جامعه بعد افرادی رو به عنوان نقیب نقباب به عنوان کسانی که واسطه هستن اینها رو به طبیر آقا میرن مومنین چشم و گوشی باشن اصابه که بتونن دیده های خودشون رو همون جوری که هست به حکام و به مسئولین برسونن و هم حامی باشه. از طب هم شما از کنم به حقتون به وظیفه خودتون و به احقاق حق عمل نکردی و بیشترین حقی رو که ضایع کردی حق ائمه است در یکی از بیاناتی که راوی دیگه از این داستان متفهم میکنه آقا ابوالده الله حسین آیات ولایت رو می‌خونن در این خطبه نیامده. بله. روایات رسول الله رو می‌خونن آیات ولایت رو می‌خونن حدیث منزلت رو میخونن، سقلن رو میخونن، توضیح میدن روز مباهله رو به یاد اینها میارن، روز قدیر رو به یاد اینها میارن از همه شون به حساب تعیید میگیرن که آیا شما شاهد بودید یا نه این خاطره تاریخی و مبنایی هیچ موقع نباید از یاد بره نباید بین نه فاصله بیفته مبانی گم بشه نسخ ها موظف هستن گذشته ها مبانی و اصول و روش ها رو انتقال بدن به نسد آینده و نسل آینده رو بسازن برای کارهای بزرگتر من در رابطه و مسئله انقلابی عزیزی گفتم شما باید رو شونه ما پاتونو رو بگذارید نسته. ما نباید رو شما پا بذاریم بالا بریم رفعت مقام ما باید شروع حرکت شما نسته. کف حرکت شما باشه پس شما باید پاروشانی ما بگذارید و بالاتر برید و این جامعه رونده خواهد شد yes. و این گروهی که اهدی احتی... یعنی دو بالی که این وظیفه رو باید انجام بدن بالر، علما، روحبان، ربانیون هستند که از جهت علمی و از جهت مبانی از جهت تربیتی باید اقتدار باشن و اصابه از جهت اجتماعی تأثیر گذار این دو گروه گروه رهبان گروه ربانیون و گروه اصابه گروه هایی که تأثیر اجتماعی دارند تاثیر فرهنگی اجرایی دارند مدیران خوبی هستند متفکرین اجرای خوبی هستند این دو گروه که عجین بشن حق طلب بشن و حق خواه باشد. اون گروه ابتلاعشون رهبت و رقبت بود بله رهبت به اون چیزی که در دست کام حق، و رقبت و رهبت و ترس از اونها ترس و بله، تمر گویایی که شما فرمودید اینها علت کوتاهیشون فرصت تلویشونه نمیخوان موقعیت اجتماعشون از دست بدن رفاه تلویشونه فرصت تلوی شونه موقعیت اجتماعیشون میخواد حفظ بشه قومش میخواد حفظ بشه جریان حزبی میخواد حفظ بشه نمیدونم تعداد افراد تو مسجد که میخواد به حفظ بشه نمیدونم چی حفظ بشه تا فرصت داشته باشه تا کانالی به حکومت داشته باشه تا موقعیت ها ریس کنن حالا نمیگیم همیشه هم به خاطر شخص خودشون به خاطر جایگاه اجتماعی خودشون به خاطر جایگاه سیاسی خودشون حتی گاهی ما قداست بهش میدین به خاطر موقعیت حتی آزادی خواهی خودشون اسلام خواهی خودشون اما اگر نتیجه این دفاع از حق مردم نباشد مردم احساس کنند که این وسط تعمه هستند این وسط که دیگر ازشون بالا برن طبیعتا خودچون رو میش تا اون فرد زمین بخوره این تعبیری که ازت دارند که شما قبول دارید ولایت محور بوده شما قبول دارید امامت استمرار نبوت بوده ولایت استمرار توهیده حالا به تعبیر بزرگان حقیقت توحیده شما اکثر حقی که کوتاهی کردید بیشترین حقی رو که شما ضایع کردید اسابه حق ام است یه بحثی بسیار شیرین و مورد استفاده که حق ائمه چیست درسته به بله حق اعمه. حق معرفتک. حق ائمه را قا ابو عبدالله و ائمه ما فرمودند یکی ما قولشون رو بشنویم تسمه و قولی توتی و امری این حد اقل حقی که عیمه بیندن ما دارن اصلا فلسفه وجودی ائمه معصومی برای احیاء دین و دفاع از مردم و پیاده کردن اهداف دینی در جامعه بشریت اینه که ما کلامشون رو بشنویم مستمع خوب کلامشون باشه ببینید حالا من نمیخوام این وارد این بحث بشم ما میاییم ائمه رو به اندازه خودمون قرار میدیم اونجوری که خودمون میخوایم بهشون نگاه میکنیم اونجوری که اونا میخوان به ما نگاه کنن نگاه نمیکنیم اونا چه نگاهی به خدا دارند؟ اون چه چه نگاهی به انسان دارند؟ کلام اونها برخاسته از وحی اونا وحی ناطقن اونا مترجمان وحی اونا نظر به بچه خدا میکنن با ما حرف میزنه اصلا فلسفه ای وجودشون اینه اینها اومدن از آسمان و محتقین برشه بودن اینها در عرش تواف میدادن ارواح ای بودن که خداوند اینها رو به زمین آورد تا ما بهره بگیریم ما میخواهیم اینا که از آسمان آمدن تا ما رو آسمانی کنن ما میخویم این ز... اینا رو زمینی کنیم به در زمین نگهداریم دا... نگه و با های زمینی خودمون بسنجیم. طب ف... اشاره‌ای داشتید به اینکه بیاید سعی میکرد حضرت علی رو به پایین مثلا... بیاره این مثلا... ف... اتفاق اینجوری بله اتفاق بیفته که حکومت ما بشه عربی حکومت ما بشه آقا رفاه مثلا آیدمو سعی کنیم مثلا خیلی بعضی از تحلیلگرای که خودشون رو آزادی خواهن بخواهنم مثل ژاپن بشیم خیلی نهایت گام مهم بشیم مثلا مثل سوئد بشیم مثل ژاپن بشیم مثل, مثل چی بشیم حالا نهایت هدف چیه مثلا همه همون رفاه داشته بشیم کم... کمال کمال ما به چی هست اصلا اگر هم ما توان نداریم خدا بر ما نخواسته این رو از ما خواسته که دنیا از کنم کف پای ما باشه و آسمان آسمان خواسته های ما و آرمان ما باشه و ما رشد و تعالی داشته باشیم با این برنامه و با این امه پس می که من زیاد بحث و نکنم. حق ائمه چیه؟ حداقل اقل دو حق. جایگاهشون رو بشناسیم. معرفت بهشون داشته باشیم. فرزت فرمودن آیات قرآن دال و جایگاه ائمه هست. دومی که اطاعت امر بکنیم. پس اونا رو بشناسیم آنجوری که هستن. بخواهیم آنجوری که میخواهند و دنبال رو باشیم اطاعت کنیم کم نبودن من تو من اکثر برنامه‌های آقا عبداللهم برای خودم هم عبرت انگیزه که عمر صد وقتی که شم خواست اون کار شنیع رو انجام بده سر ببره رو برگردون و گریه کرد گریه خوبه بسیار خوبه گریه عاشق گریه فانی گریه علی اکبر گریه قمر بنی هاشم ببینید یه بحثی مطرح شده تو جامعه امروز که آقا حماسه هست حضرت باید ما احساسات رو تعمین کنیم درست اما احساسات کی یه احساسی که قمر بنی هاشم به ولایت داره یه احساسیه که عمر سعد داره او حسین رو میخواد برای دنیاش او حسین رو میخواد حکومت هم میخواد قمر بنی هاشم با چشم تیر شعبه خورده بر حسن گریه میکنه این عشق کجا؟ اون عشق کجا؟ حسین آشق و کشته عشق های برخواسته از معرفت و دل سوخته عشق آدم عارف عشق بر فقدان است بر تأصف بر عدم حضور است که من نبودم با همه وجودم هم متاسفم هم. پس حق ائمه چی که ازت میگه شما ضایع کردید جایگاه و نقش امام رو نگاهی که خداوند به امام داره و خاتون امام رو فرستاده، که بعد ما معرفت داشته باشیم از معرفت وارد بر ولایت بشن بله. و برخوا... م... ولایت برخواست از معرفت و که شما احساس کنی عزیزی تو که بهش نیازداری نیست چه حالی پیدا میکن ما به اندازه بچه‌ای که مادرش تو بازار گم میکنه استراب پیدا میکنه با وجودش به همه وجودش گریه، این گریه گریه آدمی است که اشکش از دست. ما بچه و طفل راهیم اگه به همین اندازه اشکمون، اشک معنادار باشه، اشک احساسات کور نباشه، آت تحریک شده. از این گریه ها، این آبه اشک نیست. اینها این احساسات کبریتی از کنم توی طوفان هوا و هوس اثری باقی نخواهد باید. اون اشکی که برخواسته از دست دادن برخاست از معرفت برخاست از عشق منتخب عشق شیدایی عشق بیقراری عشق نیاز نیاز به کسی که به من بال بده نیاز به کسی که من معرفت بده نیازی که به من دل واسع بده حقوق ائمه رو نشناختیم حق معرفتشون حق معرفت حق محبتشون و حق طبعیتشون رو درست. این سه حق رو حد عقل باید میشناختن اونها رو جایگاهشون رو حفظ میکردن بهشون عشق میورزیدن این عشق مثل عشق به خداست باده. ساز اونها به ما احتیاجی ندارن ما به اونها احتیاج داریم. عشق سازنده است و اطاعت میکردن امتصال میکردن حضرت میگه شما ای عصابه کسانی که این جایگاه نقش داشتی این حق رو شما چیکار کردید استخفافتون استخفافه که من الان تو وقت بعدی به استخفاف میبرد روز در تقویم دل عاشقان روز سوره کوچک است روز گهواره خالی روز گنداغی خونین روز شیرخواره کوچک روز علی اصغر رضی همو که امام زمان ارواحنا له الفدا به او سلام میکند السلام علی ال رضی الصغیر لا لا لاایی به خوااب نقل پژمان پرپر به خوااب افسرده افزرد بخواب به خواب در دامن خاک ندید دامن پرمهر مادر گر روز خوش ندید حالا جو لا خوابی لا لالا لالا لالای به خواب و خواب راحت کن شب و روز که خاموش هست صحرا بار دیگر نترسه کودک شش ماهی من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 دست زهره خردی آن لاینا برو مادر را بخواب بخواد کن که اینک سیراب شده ای کن علی جان که از داغت پدر می میرد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 که با لا مادر تو بدون ش بعد واست دیگر آب خراب سراب, است، سراب است. قیران خیران که در چشم رواب است, رباب است. این لب یا این چشک نگیره گلق گریه نکن صدات میگیره چون ابل فضل به ابروی خودش چین انداخ خیش را از دل گهباره به تاین اندا خیش را از دل گهباره می اندازد ما تا نماند به زمین حرف عبا عبدالله گفتم بگن به سقا دیگه داره می شدید زودتر بیا وگرمم بچه هم مرغ در بین قفص این در و آن در می زد در این می زد. حی خیمه به آن خیمه زنی سر می زد آبانو چه کسی حال تو را می فهمد از خر از فرتعتش خدا میفهمد. نشون ندهن قد کلوتو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 قصد کش طنجره از را پر بابا حد رعنا صغا آن صغار شاه منادرز توندا لب ششنانان ماهي حال خان قانیم ای ماه ای ماه قبول اگر اشک میشه مرهم فراموش نکنید از دایفر خیر بخش دیگری بشنوید با سخنان حجت و مسلمین دکتر بسم الله الرحمن الرحیم در هفتم محرم الحرام بنابر اونچه که از مقاتل استفاده میشه دستور نوجوان ای از کوفه و از ناحیه ابی عبدالله ابن زیاد به عمر سعد رسید مبنی بر منع آب این دستوری که پیش از این در سیره بنی امیه سابقه داشت و یک اقدام غیر انسانی است که در اسلام هیچ جایگاهی نداره در سیره پیان اکرم منع آب در جنگ نسبت به دشمن هیچ جایی نداره و نسبت که بعضا به پیان اکرم زده شده راجع به جنگ بعد مجعوله و چه بسا همون مسئله که در جنگ بعد پیان اکرم بعد بدر رو کور کرده و یک چاه برای خودش باقی گذاشته برای اینکه آب ها استفاده کنند و کفار ازش استفاده نکنن این جزوه نقلیات مجول تاریخی است و چلاس جعل شد برای توجیه رفتار معاویه در جنگ سفین و توجیه رفتار یزیدیان در حادثه کربلا معاویه در جنگ سفین همون که در تاریخ مشهوره ابتدا بر فرات تسلط پیدا کرد و من که سپاه امیرالمومنین علیه السلام را از آب اما اون حضرت و نیروهای اون حضرت مثل امام حسین علیه السلام و مالک اشتر اینها شجاعت خرج دادن و تونستن آب رو از دست سپاه معاویه بگیرند اما در مقابل هم رو اجازه دادن که سپاه معاویه از آب استفاده کنند در کربلا متاسفانه یک دستوری از ناحیه ابن زیاد به عمر رسید و او پانصد نفر رو معمور کرد که بر شریعه فرات یعنی آبراهی که از فرات منشعب میشد و از کربلا می بر اونجا موکل بشن و محافظت بکنن و نگذارن که امام حسین و یارانشون از آب شریعه فرات استفاده کنند و در تعابیر ابن زیاد گاهی می‌بینیم که گفته اونها را از آب آبمن بکنید همونطور که خلیفه مظلوم از آب آبمن شد مرادش عثمان بود. در حالی که در محاصره خانه عثمان این امیر علیه السلام بود که مشکهای آبی رو فرستاد به خانه عثمان. اما متاسفانه در قبال این کرامت امیر که نسبت به عثمان انجام داد در کربلا رفتار عکسی انجام گرفت امام حسین و یارانش من شدند از آبی که خداوند برای همه بندگانش قرار داده. سر حسین جنس غمش فرق می کند این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند اینجا گدا همیشه طلبکار می شود این درک آمدی کرمش فرق می کند صد مرد زنده می شود از ذکر یا حسین ایسا اهل بیت دمش فرق می کند مدیرم ممنون متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی در این بخش باز هم بشنویم سخنان حجت الاسلام و, و المسلمین استاد راجبی در باره خطبه منا که به استخفاف قرار شد می‌پردازید بله بله. سه حق در اینجا مطرح شد حق ائمه حق زعفا و حق این اصابه بله حضرت فرمودن اون چیزی که خیلی شما زایقه کردید حق الائمه بود که کوچک شمردید حق را بله استخفاف بود کم کردی. تا حق ائمه و جایگاه اونا رو کم نکنن نمیتونن اینجوری هجوم بیارن، حریم رو بشکنن. مانه. نمیتونن پارو سینه حجت خدا که نور الله هست بزنن. بیت الله رو بزنن. فی بیوتن ادنارد و انترف. بله. چهجوری میتونه جامعه‌ای بعد از یه سوالی مقام معظم رهبری مطرح کنه به نظر خیلی سوال کلیدی است. حضرت میگن چی شده که بعد از رسول الله 50 سال سال 6 هجریه. حالا رسول الله هم که سال هجری به رحمت خدا که نرفته. ده سال بعد بوده، چند سال بعد بوده. چی شد این 40 سال؟ چه اتفاقی افتاده؟ که بیت الله رحمت واسعه خدا خانه‌ای که معزون مرفوع مرتفع اینها میان، اول استخفافش میکنن. مقام رو پایین میارم بله. شما ای صابه حق ایم اون حقوق اطاعت ولایت محبت و کوچیک کردید حقیر کردید پایین آوردید. حق حق زو... زعفارم زایع کردید و اما حق زعفار و اما حق خودتونو رو پرپیمانه گرفتید برای خودتون حق مضاف قائل شدید نه مالی رو صرف کرده بودید نه اشیری رو خرج کرده بودید نه آبرویی گذاشته بودید برای خودتون به خاطر یه جایگاه اجتماعی که پیدا کردید یک از کنم فرصت‌های ویژه رو ایجاد کردید با ادبیات امروز این تعبیری که از ذات حضرت, دارن، حضرت می در راه خدا نه مالی رو بذل کردید و لا نفستو خاطر تو. نه خودتون رو به خطر انداختی و نه اومدید اشیره ای رو به کار گرفتید از توان اشیره و قوم خودتون استفاده کردید تو جامعه دینی یک فرصت ویژه یک فرصت راند خالی به حساب راندخاری به تبیر یا ایجاد کردید و اگر قرار بود که به حرفتونم گوش نمیدن جریان ایجاد میکردید ادامه حضرت میگه دقت کنید وقتی جامعه ای کسانی که بعد مدافع زعفا باشن میان زایع میکنن مردم رو نردبان میکنن تا بالا برن حضرت میگه بترسید از زمانی که شما این جایگاه رو از دست بدید این موقعیت رو از دست بدید نظام اجتماعی شکسته بشه اگر انسانها به ادالت به دولت به علما به گروه ها پوش نکنن تکیه نکنن پشوانشون نباشه اینا خودخواه میشن خودمهور میشن جمع امالان و عدده به جمع مال رو میارن یحسبوا ان ماله اخلده اینا میگن آقا برو این حرفا چیه قدیم ببینید شما تو مسئله جنگ حالا خیلی قدیم نه مسئله جنگ آدم‌ها اصلاً به خودشون فکر نمیکنن به دیگران فکر می‌کردن به مملکت فکر می‌کردن هویت خودشون در هویت انقلاب می‌دیدند هویت خودشون در هفت جامعه دینی می‌دیدند غیرت ترجی می داشتن بله دیگه امان. یعنی اصلا نمی‌گفتن که آقای مسئله فلانیه مسئله مرز مسئله, مسئله احواز مشکل خوزستان مشکل ماست مشکل منه و این اجاز میکنه اینکه من احساس کنم همه مشکلات من کرد مشکل من است و امکان من هم برای همه جاست برای همه کس هست سفره ها برای همه په میشه دردها برای همه هست. درد دیگر درد شما درد من است دوای پیش من برای شماست و همین نگاه هم شما داری درد من درد شماست داروی پیش شما برای من است این باعث میشه جامعه به همگه چفت بشه قفل بشه محکم بشه غیر قابل نفوظ بشه دشمن نفوذ نکنه رخنه پیدا نکنه اما اگر میبینیم زمان معاویه انقدر شکاف پیدا شده که معاویه وجودی بی شخصیت بی هویت، ارکان هیچ کنه حتی زواهر هم نسبت به مسائل اسلامی ناده مثل یزید که از از مثل مثلی لای مثل مثله و ابدا مثل منی با همچین وجودی به هیچ وقت بیعت خودتو میفروشی خودتو خرج میکنی خودتو خرج کنه برای یزید که چی بشود چی احیا بشود خودشو خرج میکنه همه هستیشو میده رگ گردنشو میده عزیزانشو میده ها درختی که انسان ها بفهمن. حالا انشاءالله تو بحث بهش میپردازیم خوه آقا عبا عبدالله هدفش چی بود آن ها اگه به شروز تاسهای بون میپردازیم در اونجا مشخص میکنیم انسان بفهمند راه خودشون رو ببینند. چون دین بدون انسان عارف و عاشق معنا نداده دین برای انسان بله. آقا عبا عبدالله آمدن خودشون رو فدا کردند. خودشون و خانوادهشون رو به مشقت انداختند به مصیبت‌های راتبه انداختن به مشکلاتی انداختن که غیر قابل تصوره تا لیه که من حلکن بینت احیاگری روشنگری راه رو نشون دادن تا هر کسی که میخواد ببینه و بیاید یا ببینه و برود درسته. رفتن و آمدن بعد از بینه و آگاهی و آشنایی باشد من همینجا نکته رو مطرح کنم احساسات داغ کردن مردم بدون رؤیت بدون توجه بدون به توجه به مبانی توجه کردن به حقوق توجه کردن به مقام آمدنش هم معناست. احس... با احساس میاد با احساسم میره با عشق میاد با اخم میره بله کسی که میخواد با اخ بره با عشق آمدنشن بقایی نخواهد داشت اینکه حالا مردم رو عشق آلود بکنیم خود امام حسن کار خودش رو انجام میده این این مقدار شعارگونه و شعرگونه است خود آقا عبدالله روز هاشورا سی هزار نفر رو با بچه کوچک به خون نشسته خودش نتونست متحول کنه چون فرمودند شما شیطان براتون مس... سیطره پیدا کرده شما نمیبینی شما در قلوبتون مرزه برای, برای نسخا برای اینکه یه ریشه ای رو بکند و بعضی رو پخش کند تا بعداً ثمر بدهد. حق امه رو شما کوچه شما دید. حق مردم رو زایه کردید. حق خودتون رو پرپیمانه کردید. به چه انوان؟ به انوانه که شما اصابه هست. در مقابل این حقی رو که رفتید گرفتید به جای که حق دیگران رو مقدم می داشتید. مهور جامعه رو که امامت هست و احیامی کردید. شما نه مالی رو برس کرده بودید و نه جانی رو داده بودید و نه قوم و قبیله رو خرش کرده بودید. یک توقع بیجا برای پر پیمانه, کردن پیمانه خودتون و کوچک کردن و حقیر کردن مردم. جامعه دینی این نگاه رو نخواهد داشت. جامعه دینی آدم ها در اون خواهد روش کنه شاید یکی از نمیدونم پیام هایی شما یه آقایی گفته بودن که خب این چیز که نیست ما اومدیم اون چیزی که نیست رو ایجاد کنیم چرا میگیم کلو یام آشورا و کل ارزن کربلا یعنی هر روزی روز انتخاب صحیح توست و هر سرزمینی سرزمین شور و هماسهی توست تو هر جایی که هستی میتونی برای خودت کربلایی رو تصور کنی. که دعوت شیطانی هست به عنوان یزید دعوت رحمانی هست در غالب ولایت و تو هم باید انتخابگر باشی از اون طرف بیتعخدی و فریاد و نمونم پیمان شکنیست این طرف افراد کمه این طرف تشنگیست این طرف جهاد، این طرف کوششه اگه تجارتن تو تنجی کن اوابن علی میخوانی هل ادال لکم الا اجارتتون جی کن اگر این معامله با خدا میخواه و نگاهت به دنیا معامله است می که خودتونقا برفروشی تو داری مصرف میشی میخواد خوب مصرف بشی میدونی تو بقاد در فناع توست در انتخاب توست در عشق توست در ایمان توست در عمل توست در تصمیم توست یک شب شب تصمیم است همه شب ها یک شب در سال شب قدره درسته مهم در کشه اصحاب عبا شب شبه شب قدرشون بود و خوب انتخاب کردن خوب جایی رو آشغان و بی سر این راه رو رفتن تا ابدی شدن ببینید اگر خاستیمی رو انتخاب کنیم تو جامعه امومد بدونیم جامعه ای دینی اگر اصابه شدی گروه جریان قوی و قدرت ساز برای زمان خودت شدی تو مقتعی بدونی چی رو میخوایی به پا بداری خودت رو میخوایی حفظ کنی جریان تو میخوای برای چند سال دیگه حفظ کنی یا میخوای در زمانی که هستی مردم رو به پا بداره ل یقوم الناسو بالقص تا مردم قص رو به پا بدارن مردمی که میخوان قص رو به پا دارن بعد به یک شخصیت و یک فرهنگ و به یک تربیت و به یک واگذاری بشه خودشون امر خودشون رو به بگیرن این اصابه که داریم ازشون صحبت میکنیم به نوعی ملوک اون جامعه هم هستند و حالا این اناس الادین ملوکه هم هم یه بحثیه که مردم قرار از همین حسابه پیروی کنند باید. و قرار مثل اینها بشند حالا این مثل این ها شدنه بستگی به این داره که این حسابه چه آدم هایی باشن؟ اگر خوب باشن، خوب با اون جامعه یه جامعه خوبی در میدست کار و اگر نباشند، همین اتفاقی میشه که حالا در زمان محاویه محسین دارن راجع به صحبت مفرانیه بله. این ضعف جامعه است که اناس الان دین ملوکه هم این باید جوری بشه این بزرگان مبانی رو انتقال بدن ببینید شما در کنار امیر مالک مالکه اشتر بزرگ شده بقید. که حضرت فمودن کانلی ابن ایشون مثل برادر پدر برای من بود همینطور که من برادر برای رسول بودن ایشونم برای من برای ببینید به یک خدیت محمد ابن عبیبک در خانه آقا امیر المؤمنین بزرگ بشه انقدر شخصیت پیدا میکنه که علیبش تکیه میکنه از یه که عنوان استاندار بفرستش شخصیت دادن به آدم ها از گلها مثل ابوذر استفاده کرد ابوذر کی بود قبل از رسول الله یه بیامالیت بود مقداد کی بود خورما فروش بود الار کی بود یه از حبش اومده بود تربیت دینی با روش خودش با روش بیناتی خودش با نوع دیگرشش و شخصیت دادن به آدم ها آدم ها رو بزرگ بخونن از ما نمیخوان کار بکنه مردم رو تابع خودمون بسازیم من بفهمم اونا بیاین. من که فهمیدم وظیفه دارم فهم رو انتشار بدم بفهمونم و بخواهم که من لیهلکه منهلکه انبینهچه من میخوام مردم چش باز کنند مردم بفهمند به ارزش وجود ارزش وجودی خودشون و به کرامت انسانی خودشون آگاه بشن وقتی جامعه آگاه شد جامعه آگاه یزید رو نمیپذیره فاسد رو نمیپذیره و جامعه فاسد عاده رو نمیپذیره اینه که دشمنان جامعه دینی میخوان جامعه رو فاسد کنن تا حکام عادل در جامعه فاسد نمیتونن حکومت کنند حکمشون جریان پیدا نمیکنه ادالت جریان پیدا نمیکنه جامعه که فاسد شد خودخواه میشه شهوتران میشه حالا در یک جایی رت مطرح میکنن. شهوات و شبهات مطرح میشه بدعتها میاد شهوت ملاک انتخاب میشه طبیعتا و که شهوت رانی نه شهوت نیست که فقط متأله جنسی باشه نه شهوت قدرت شهوت مالخواهی بله. شهوت نمیدونم چی همین موضوع شهوت میل بیجاستی که در هر بله. چیزی میل بیجاستم شهوته از حد خارج شدنه وقتی شهوت حاکم بشه حکام خودخواه بشن فزون طلب میشن فوزون طلبی باعث میشه که دیگران رو کنار برسن باعث میشه به حقوق مردم باورشون باشه مردم حقی ندارن بله وقتی بح حقوق مردم ضایعه شد و افرادی که باید مدافع بشن خودشون طلبکار از مردم شدن جامعه به کی بعد تکیه کنه حاکمش که معاویه هست افراد رو داره ساپورت میکنه به خدا الهی داره تامین میکنه این از حاکم نظام حکومتی هم که علمای فاسد گرفتن اسابه فاسد گرفته اونهایی که واسط هم هستن باید دفاع کنن حامی باشن پناه بدن طبیعتاً یه اکثریت محروم چیزی که 99 درصدی که در اروپا دارن باشه بحث میکنن باعث میشه که اینها تکیگاهی نداشته باشن طبیعتاً یا به خودشون رو میارن یا تبدیل به یک جریان انقلابی جریان معترضین خواهد شد یا فساد شیوع پیدا میکنه و امنیت از بین میره اصلا فلسفه ای ایجاد وجوهات و صدقات در جامعه اینه که امکانات ولو در صورتی هم که به حساب امکانات واجب کفاف نداد صدقات موقوفات وقف صلح جوری بشه منابع رو سوق بده به فقرا و فقرا رو پای خودشون می ریسن ببینید شما به هر مناسبتی میشه میگه آقا مثلا کفارات منا فطریه صدقات خیلی اتفاقی که اینجا میفته یه صحبت از این میکردن که این فقیر پروری پروریس حالا به زعم اونا گدا پروری بودش که می‌گفتن می‌گفتن این گدا پروری اگین کار ما نباید بزاریم. بگذاریم تو سیستم خودمون اصلا گدای ایجاد بشه این مطلب همین که نباید بذاریم بدن من و شما مریض بشه درست بله نباید بدن مریض بشه بدن نباید سرما بخوره بدن نباید نمیدونم فلان اما اگر شد چی باید جبرانش کنیم. بعد بهش تقلیهت، فرصت بدی بعد تأمینش کنی جامعه دینی اگر تو مصارف خودش طبیعی بیش بره فقیر نخواهد دار چون برای جامعه ما ببینیم الان همه من و شما فقیری زیر 700 هزارتوان فقره درست شو؟ اون کسی که خونه نداره فقیره فقیری کسی مستده ف... اون فقیر نیست که بتونه حج بره شما حج میتونی بریون؟ نه می دونند صد دندون بره خدا مگ... مگه تو قرعه کشی ها به نام دیتی از رفتیم خب رفتی از, از زمینه ببینید فقیر در نظام فقی ما اونه که حج بره کی حج میتونه بره خونه داشته باشه امکانات چند داشته از بره و برمیگرده خرج زندگیش مختل نشه این مستطیه در قید 200 نگاه آقا ما سپه می کنیم فقیر کسی که لباسش پاره هست کنار حرم حضرت محصومه سرش هم که کرده یه کاسم بذاریم آقا این فقیری نیست کسی که نتواند نیاز سالش رو تهمی کند فقیر است فقیر تو منابع اقتصادی ما درآمد براش گذاشتم وجوهات صدقات زکوات از کنم موقوفات و حاکم شر وقتی بینید کفافشون به یه جامعه مثلا اومده سیل زده شده، یه جامعه اومده گرفتار شده. سطح زندگی‌ها بالا رفته، درامت ها خوشحالی شده کم شده. دیروز طرف زکات میداد امسال نداره بده. چی بعد رهاش کنی؟ نه. و شکسته شده شخصی است. از کنم خدمت شما که بسیار آدم متین مالش رو خوردن، مالش رو بردن، دوز مالش مالش سوخته، درست شد میشه فقیر. سری جامعه باید به برسه. یعنی نظام اسلامی موظف است یه ساختاری تعریف کند که این رو تأمین کنه این بلند به شروع زمین بس. چون اگر این زمین بخوره خانوادهش مشکل پیدا میکنند اصلا جامعه تشتت پیدا میکنه. این کار هم کار اصلی همین اصابه است بله ببینید این تعبیر رو ببینید اون گداپروری که تکدی میگن یعنی کسی که دارد خودش رو زده به نداری نداری و تنمی آقا به ندار نرسید یعنی چی؟ پروری نه اصلا اون گدا نیست اون است که منبع مالی داره منابع مالی دارد تو جامعه اسم. مال دارد آقایون مال حقون معلوم لسائله حسن. حق مشخصی حق خودش هست من پشت این تریبون بلندم میگم حق خودش رو به حق دار برسونی اونی که میگوین پروری نکنید یعنی نیایید با آدم که توانمن هستن بخاطر آتفه بی آتفه بی جاتون بدید شخص مفید رو تبدیل به آدم بی اثر بکنید اون حرام هم هست و حق زایع نشده فزون تلوی خواسته شده حق امه ادا نشده استخفاف پیدا کرده اونهایی که مهور بودن حقشون ادا نشده مردم که باید پشوانی این جریان دینی باشن تأمین نشدن رزقشون بهشون نرسیده باران رحمت الهی که تو ریزش احکامش هست بله. بهشون نرسیده یه درفتن این باران خودشون حبس کردن نهر خودشون کشیدن نهرهای عادی منابع رو اختصاص دادن به از کنم زیر زمینی خودشون برای نویر آسمون سخت دادن حالا همینطوره <تصفح> قبل از که بباره عبر رو رفتن از کنم و در بعضی از می میبینن انسان ویگو از تو آشپزخونه تقسیم کردم مال خودشون مثلا نگوشه بیا سر سفره چهار تا غذا اضافه بگیرن یکی از بزرگان میفرمودن این بی انصاف ها حالا من شاید جایی نباشه چون برم. بگم میفرمودن سر د... آش دیگه آشپسخونه تقصیر میکنن اونجا نمره میزنن که آقا این دینی که ساخته میشه برای جناه ماست برای فرد ماست سهم ماست تو فلان شورا سهم خواهی هم پنشت کارخونه کنارش هست درسته حالا ببخشید دیگه از خواهی بکنم یک کمی محدود هست شده که به های بقیه خطبه آقا موسی نداری سلام هم بپردازیم حبيبی حسین حبيبی حسین الیارحم يا حبيبی يا حسین يا حبيبی يا حسین حبيبی حسین ايتير خداوند چنين كتابان آرا قدری به کمان بگیر دندان آرام ای تیر به حرف حعمل گوش مکن برگرد مرو تو را به قرآن آرام گوم از ذریه قبول باشه ان شاء الله حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین شهید, شهید شاید شاید و... شاعر ادیب و متفکر مسیحی لبنان در اشعار کربلای خود درباره حضرت علی از علیه سلام با لطافت اینچنین سروده فرزند شیرخاره را در آغوش گرفت شاید قدری او را آرام کند نوزادی را که چون گلی سرخ و خشکیده بود با انگشتان اندوخ مویش را نوازش کرد که ناگهان تیری در آسمان قرید و گلوی نازک او را درید و بر او جامی خونین پوشاند، پدر خون قنچه شیر خارش را در دست گرفت و دمی قلب اوست یا خون نوزادش که در دستش می ریزد. لای لای علی اصغره لای لای علی اصغره لای لا علی جان علی جان علی, علی, علی لا در بخش آخری که خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد راجویاردی هستیم آشنا خواهیم شد با کتابی از زبان ایشون راجویاردی فکر از عزیزمون فرمودن که در رابطه با کتاب مختصرش صحبت بشه ان از فردا کتابایی که معرفی میشه سعی میکنیم به توضیحی از عناوینی که در اونجا مطرح شده که از اینان اطلاع پیدا کنند دو کتابی رو که من فکر میکنم بسیار دقیق هست از از تایتول فلسفه گرپایگانی مجاریقت ایشون گذشته از تخصصی که در فقه اصول دارند در رابطه با مباحث روایت و موابصی هم آقای امام زمان و این معصوم است خصوص خاصی رو دارن و مطالب بسیار دقیقی مطرح میکنن آفتاب مشرقین و پرتو از عظمت امام حسین آفتاب مشرقین بله پرتو از عظمت امام حسید. از کن از کتابهای معروف از اتاج الله اسما صافی گلپایگانی حفظه الله هست که امیدوارم از اینا مورد استفادهشون قرار بگیره ان در روزهای بعد کتابی رو که بیشتر به نظر من به هیچ وجه من مدعی نیستم که بد کنم همه کتاب ها رو به هیچ وجه سعی کردم کتابهایی رو که مورد استفای عموم بیشتر میتونه قرار بگیره متقن باشه و کتاب ها یا بود تاریخ نگاری داره و یا بود تحلیلی داره یا از هر دو بهرهای رو برده بله خدمت عزیزان عرض کنم سنگین نباشه فری تخصصی نباشه برای اقشار خاص نباشه سطحش هم پایین نباشه تکراری نباشه که تای میکنن ان بتونن استفاده کنن امیدوارم که هر روزی که زاد بیشتر با مقامات اهل بیت ان آشنا بشین و توسطمون واقعی به در قاین عزیزان ان شاءالله باشه التماس دعا از شما خدمت خدمت کنم که کتاب آش... آفتاب مشرقین و پرتوبی از عظمت امام, امام سله سلام که تکلیف حضرت الله صافیه گلپایبانی هم است ان شاء الله تایید کنید و توجه متن رو قرار بگیره و استفاده لازم رو ببرید خب روزی که بگیم سفری شده چون دیگه داریم میرسیم به لحظات غروب آفتاب روزی بود که همه برای علی اصغر امام سلام علیه السلام کردند آیه راجویی من میخوام خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه دعا کنیدمون با توجه بنده من مطلبی رو الان عزیزان شنوانده ما تره شدم عزیز مجریمون مرادرشون تصادفی کردن و در حالت کما هستن خدا رو قسم بدیم به حق علی ازفرشون و به حق مظلومیت اون باب الحوائش همه مدیزها به خصوص عزیزمون رو انشالله شفا نایت کنن و همه رو خوشحال کنند و آقا به بعدی ما نگاه نکنن را من تو بزرگواری خودشون نگاه کنم بر فقر ما به همه ما ببخشند و قلب متعطره. آقای امام زمان رو از ما راضی و خشنود بذارند و ما رو متی اوامر ایشون قرار بدن. خیلی ممنونم آیت الله حاج علیدادتون. امیدوارم که همه مریض‌ها هر چه زودتر جامعه شفا بپوشند و در این ها و مراسم‌ها خودشون با پای خودشون شرکت کنند خیلی لطف کردید حاج علیدادت. التماس دعا. خدا باشه. یا الهی شده، روی مهد گلگون شده بابای تو مظلوم شده هجران تو جانا قم دوریا به دل جا می دهد لبخند به باباید تسلام می دهد لبخند زیباید به باباید تسلام می آنگاه آسمان بود و فریاد با علیای فرشتگان که نگاه کائنات را متوجه کربلا می‌کرد. جایی در کنار خیمه‌ها که به شکل مزاری کوچک و قریبانه گاوهواره آرامش ابدی طفل شش ماه شده بود. مزاری که می‌توان با توسل به طربت اطراقین آن تمام دردها را شفا شید مزاری که میتوان با آن به خدا رسید خدا، خدا، خدا، خدا، خدا. مزاری نکن عزیزم که قلب من میگیره رنگ به نداری مادر ببین ام ی سادات کو ام ی کو وقت گذشته دیره تشنه رو دستای من بچه هم داره میبین از وقت که ناله بی بیتاب و بی قراره لباش به هم میخوره اما صدا ندا کنار <تصفيق> گهوان چهای خدایی میخونه بچه رو دادن بابا بابا رد جانم به لب رسیده تیرم کمان پریده به روی دوش بابا حلق علی درید درس دیگری از آشورا از زبان حجت و لسا و المسلمین استاد دهش. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله هفتمین درس از آشورا عزت و آزادگی است دوستان خدای متعال عزیزه عزت را از خودش و رسولش و مؤمنان میدانه فرزند زهرا دهبر بزرگ آشورا ایشونم که تربیت شده آغوش علی و دامان مادرش زهراست عزت طلبه یکی از نویسندگان مصری گفته هر کسی کلید شخصیت داره، کلید شخصیت علی جوانمردی اوست. می بیان بکنیم کلید شخصیت امام حسین عزت طلبی و آزادگی است. امام علیه السلام هرگز اظهار ذلت نکرد. این سخن معروفش رو باز به یاد بیاریم که فرمود: مثلی لا باوی او مثله. عزت من اجازه نمیدهد که به مثل یزیدی من بیعت کنم با مثل یزیدی بیعت کنم. سوگند به خدا من همچون زلیلام دست بیعت به شما نخواهم داد در روز آشورا در خطاب به سپاه کوفه فرمود ابن زیاد میان کشته شدن و زلت مرا قرار داده هی حیحات من نزلل هر که زیر بار زلت نمیرم بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به حد زندگی یه ننگین است امام علیه السلام ثابت کرد که عزت از آن مؤمنان است، مؤمن عزت پذیر است، وزیر بار ذلت نمی رود. چقدر زیبا خواهد بود اگر حسینیان زمان ما هم و در هر زمانی به این شعار عزت و آزادگی عبابدالله توجه کنند و عزت و آزادگی را از آن بزرگ آزاده جهان بیاموزند. عزت و آزادگی از دیگر شعارها و درسهای مندگار آشوراست که انشالله به این نیز توجه خواهیم کرد. شی مارا حسرت دی نبریزه اونو په ولم گریه میکنم بی تابمو به یاد حرم گریه میکنم بی تابم و به یافت حرم گریه می کنم شایسته زیارت گوشه نیستم. نیستم این روزها به حال خودم گریه می کنم این روزها به حال خودم تا تل زینبی یه بو بودال قتلگاه تا خیمه ها قدم به قدم گریه می کنم در القمه به یاد لبت آب می شوم با روزه های مشک و علم گریه می کنم گفتن چشم خوهرت از دست رفته است بفدن. چشم خوهرت از دست رفته است معلوم شد برای تو کم گریه می کنم. معلوم شد برای تو کم گریه می کنم یه شب گریه نکنم بیمیرم شلا خبول بشه ازاداری هاتون تاعت و عبادات و رازونیات هاتون دوستان گرامی داغت عظیم است و به دل جا نمی شود هرکس کس نشست گریه کند پا نمی شود. پا تا روزه ها روزه رزوان آدم است هرگز مقیم جنف و دهلاو نمی شود. مجنونم و به خاک که حرم سجده میکنم کنم. هر تربتی که تربت لیلا. می بر پرچم و علم سلام بر شعر محتشم.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 دنیا پر از ظلم و جور است شما ببینید چه میکنند در فلسطین چه میکنند در عراق چه می کنند در کشورهای گوناگون چه میکنند با ملت های دنیا چه میکنند با فقرا چه میکنند با ثروت های ملی کشورها چه میکنند ابعاد عظیم حرکت حسین بن علی علیه السلام شامل همه این میدان وسیع می شود